بخش یک، محمد با امریکا می رود. من محمد هستم. من 29 سال سن دارم. من از شهر مشهد هستم. من همیشه از کودکی علاق من بودم که با فرهنگهای دیگر کشورها آشنا شوم. به همین دلیل در سال 1389 شمسی تصمیم گرفتم برای ادامه تحصیل در مقطع فوق لیسانس در رشته مهندسی مکانیک به کشور مالزی سفر کنم.